عصير آبمیوه، میوه حبیبات دانه‌ها یا های میوه فتحه دهانه دریچه نعانی رنج میکشیم اذیت میشویم عزیزی مدیر شرکت رانی نرجو انتاج عصير بدون حبیبات او توسیع الفتحه قليلا لأننا نعاني كثيراً فی اخراج الحبات اخیره مدیر عزیز شرکت رانی، خواهشمندیم آب میوه بدون تکه های میوه تولید کنید یا دهانه قوطی را اندکی بزرگتر کنید چون برای بیرون آوردن تکه های آخر خیلی رنج می کشیم.